حکایت یکی را از علمای راسخ پرسیدند، چه گویی در نان وقف گفت اگر نان از بحر جمعیت خاطر می ستاند، حلال است. و اگر جمع از بحر نان می نشیند، هران نان از برای کنج عبادت گرفتهاند صاحب دلان، نه کنج عبادت برای نان.